نوزده حدیث فرم رسول الله صلی الله علیہ وسلم مصدق با تخفیف صادق کسی عاملی هست که سعی و تلاشش برای گرفتن زکاته که رسول صلی اللہ علیہ کارمندان یا صرف خودش می فرستاد تا اینکه زکات را از مردم بگیرم اموال صدقات و زکات صدقات که نه همون زکات واجبه بود که از مردم میگیرن اصل ورود حدیث در اینه که عمدن ناظر راستا از باب گله و شکایت اینکه اون عاملی که میفرستی اون،, اون کارمندی که تو داری میفرستی که زکات از ما میگیره به ما ظلم میکنه رسول الله صلی الله علیه و خطاب به اونها میگوید ارض یعنی راضی بسازید اون کسانی که میان از شما زکات میگیرن شما حقتونو بیدید بحث بحث این نیست که انسان بر ظلم سکوت بکنه مثلا زیادی بگره، نه بحث این نیست که چون زیادی گره پس من توصیه به صبر هست و نه در مقابل ظلم این یک مطلب، مطلب دوم هم این که بحث این که انسان مجبوله یعنی از باب جبله، از باب خطل خلقت و فترت اینطوری که تو المال حب جمعه، یعنی حب مال در قلب ما هست اولش من خودم که بگم که مثلا خودم نفس نفسم تبریه بکنم بگم حب مال در من نیست ویز اینکه نشان های قیامت هم, هم که این حب بیشتر میشه یعنی ما باید این حب رو کم بکنیم به دنیا دنیا به صورت مال حب مال در ما هست اینجا وقتی که اومدن نداد. وقتی که اومدن شکلات کردن گلایه کردن که دارن ظلم میکنن مال از ما میگیرن شما رازیشون بسازید چطور راضی میشن اونها؟ شما حق واجبتونو بدید اون قد... اون قدری که الله براتون واجب کرده بدید رازیشون بسازید با این نه اینکه که مالو نگه دارید ندید قایم بکنید یا واسه اگر بزرگ دارید پراکنده بکنید که ندونن اونا چقدر دارید بحث بحث اینکه ما باید حقمون رو ادا بکنیم تا اینکه اونا از ما راضی باشن یعنی راضی کردن اونها دست ماست اون واجب رو با انجام بدیم و نفسمون رو پرورش بدیم بر این عبادت اینکه این اگر این ما رو میدیم تعبدی بدیم یعنی لله بدیم نه اینکه مثلا احساس بکنیم که نزور ظلم چون اینا اومدن شکایتشون گله‌شون از اینه که این داره ظلم میکنه و این زوره رسول الله علیه وسلم فبن مصدقی مصدقکم اونا رو راضی بسازید. اونا عاملت. فتنه هایی که در اسلام هم پیش اومده بر سر ماله. یعنی فتنه هایی که یهود اومده است و استفاده کرده مثل است عبدالله من سبه یهودی که سبب شد که یاسمان رضی الله عنه قد برسه در مال بود. الا این که بر نفس خودشون خصلت عفو و بخشش این خصلت را بر خودشون برتری بده اگر میتونی ببخشی میتونی چشپوشی بکنی نه گفت شریک میشن با هم بعد میگن که نه همش من کار کنم چطور بشه که این 50 بگیرم من بعید نمیدم 20 بگیرم من ده بگیرم من فلان بگیرم نه من زحمت کشدم نه نمیدونم من الان پول لازمه اون میگه من الان پول لازمه و از این حرفا حدیثا پیش میاد هر کدومم حق به کفعه خودش میده و انسانم گفتم مجبور یعنی مفتوره یعنی سرشتشه بر مال مال خصلت خوبی هم نیست حب دنیا حب مال يادمون نرى فرمود ي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا ملعونه ملعونه وان شيء في الدنيا الا ذكر الله وما والله ما غير ذكر الله وان شيء كالله الله را دوست